سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان و همراهان عزیز و دوست داشتنی کانال هزار افسان امروز هم در خدمتتون هستم با یک قصه زیبای دیگه به نام سیلون و جوکاسا بریم که با هم قصه رو بشنویم یکی بود یکی نبود توی یک روستا دو بچه به نام های سیلون و جوکاسا زندگی می کردند. زیبایی و تیزهوشی اونها در اون روستا زبان زده همه بود. پدر و مادرشون به خاطر اختلاف ها و دعواهای قدیمی سالها پیش رابطه خوبی با هم نداشتند. البته بچه ها این اختلاف ها رو کاملا از یاد برده بودند و حتی نمیدونستند که سری چی بوده، اما مثل یک خاطره بد توی ذهنشون باقی مونده بود. سیلوین و جوکاسا از این بگومگوها و دشمنیها کاملا دور بودند. در واقع هر وقت که پیش هم نبودند اندوگین می شدند. اونها هر روز با هم گله گوسفندان رو به صحرا می بردند و ساعتهای طولانی در زیر آفتاب تابستان سرگرم بازی می شدند یا در زیر سایه درختان در کنار رودخونه استراحت می کردند. از غذای روزگار، روزی پری چمنزار از اونجا میگذشت و اون دو نفر رو دید. پری چنان شیفته یه زیبا و رفتار عاقلانی بچه ها شد که تصمیم گرفت مراقب اونها باشه و از اونها حمایت کنه. هرچی بچه ها بزرگتر میشدند پیش پری عزیزتر میشدند. اوایل پری برای اینکه نشون بده چقدر اونها رو دوست داره در جاهایی که دوست داشتن حدیه های زیادی میگذاشت و این بچه ها رو خیلی خوشحال میکرد اونها هدیه رو اول به همدیگه تعارف میکردن انقدر همدیگه رو دوست داشتند که همیشه اولین فکری که به ذهن هر کدومشون میرسید این بود که جوکاسا چی دوست داره؟ یا سیلون از چه چیزی خوشش میاد؟ پری که هر روز براشون شیرینی و آب نبات میبرد از شادمانی و لذت معصومانشون بسیار خوشنود میشد زمانی که اونها کاملا بزرگ شدند، پری تصمیم گرفت خودش رو به اونها نشون بده. بعد در زمانی مناسب، موقعی که اونها برای در امان موندن از تابش شدید آفتاب نیمروزی زیر سایبونی از شاخه های پرگل پناه گرفته بودند، پیش اونها رفت. بچه ها از دیدن ناگهانی اون بانوی باریکندام و بلندقد که مثل شبه از سر تا با لباس آبی پوشیده بود و تاجی از گل به سر داشت جا خوردند اما وقتی پری به آرامی باهاشون حرف زد و گفت که چطور اون هدیه های رو که باعث تعجبشون شده براشون فراهم می کرده اونها با قدرشناسی شناسی تمام ازش تشکر کردند و با روی خوش به سوال های پری جواب دادند وقت خداحافظی پری گفت هرگز به کسی نگن که اون رو دیدن و اضافه کرد منو زیاد خواهید دید من بیشتر اوقات با شما خواهم بود حتی اگه دیده نشم با گفتن این حرفها پری ناپدید شد و اونها رو مات و مبود تنها گذاشت بعد از این ماجرا اون اغلب پیش بچه‌ها میومد چیزهای بسیاری بهشون یاد میداد و خیلی از شگفتیهای سرزمین زیبای خودش رو به اونها نشون میداد بالاخره روزی به اونها گفت میدونید که همیشه نسبت به شما مهربون بودم. فکر میکنم زمانش رسیده که شما هم کاری برام انجام بدید. آیا چشمهی رو که به اون علاقه دارم به یاد میارید؟ قول بدید که هر روز صبح پیش از طلوع خورشید به اونجا برید و اون رو از هر سنگ و خار و خاشاکی که مسیر و آب رو بسته پاک کنید. برگای پژمرده و ترکه های کوچیک شکسته رو که آب چشمه رو کسیف میکنن بردارید. این کار رو نشونه قدردانیتون میدونم اگر این کار رو فراموش نکنید یا اون رو به تأخیر نندازید چشمه من در تمام این چمنزار در زیر نخستین پرتوهای خورشید بامدادی زیباترین و زلالترین چشمه ها خواهد شد و من هم قول میدم شما دو نفر هیچ وقت از هم جدا نشید سیلون و جوکاسا مشتاقان پذیرفتند مطمئن بودند کاری که پری از اونها خواسته خیلی سخت نیست. اونها مدت با نهایت دقت و هوشیاری از چشمه مراقبت میکردند و آبش رو تر و تازه نگه میداشتن به طوری که در تمام اون سرزمین زلال و پاکیزه ترین چشمه بود. اما صبح یک روز بهاری خیلی پیش از اونکه خورشید تولو کنه اونها در حالی که از سمتی دیگه به سمت چشمه میرفتند زیبایی هزاران گل پرزرق و برق اونها رو وسوسه کرد و به سمت خودش کشید. همه جا گل رویده بود و اون دو نفر برای چیدنشون از طرفی به طرف دیگه رفتند. جوکاسا به خودش گفت: میخوام برای سیلون یک دست گل درست کنم و سیلون به خودش فکر کرد: جوکاسا با این تاج گل چقدر خوشگل میشه. اونها به هر طرف میدویدند و دورتر و دورتر می شدند. چون با هر قدمی که برمی داشتند گل‌های بسیار زیباتری ظاهر می‌شد. بالاخره اولین پرتوهای خورشید اونها رو به خودشون آورد. به سرعت برگشتند و به سمت چشم دویدند و وقتی از دو طرف به چشمه رسیدند با چشمان هراسان و وحشت زده دیدند که آب معمولا آرام چشمه میجوشه و حباب داره. به پایین چشمه نگاه کردند و دیدند جویبار نیرومند با سرعت براه افتاده و همه جا رو فرا گرفته. سیلون و جوکاسا متوجه شدند که رودخونهی که حرکت میکنه و پهن میشه داره اونها رو از هم جدا میکنه. همه اینها اونقدر سری رخ داد که فقط فرصت پیدا کردن فریاد بکشن. هر کدوم گلهایی رو که برای دیگری چیده بود در دست داشت. سیلون 20 بار به این امید که بتونه شنا کنه و به طرف دیگه برسه، خودش رو بین آبهای خروشان انداخت اما هر بار نیروی بازدارنده اون رو به عقب میروند در همون حال جوکاسا هم تلاش کرد با پریدن به روی درختی ریشهکن شده و شناور از سیلاب رودخانه از اون بگذره اما تلاشهاش مثل سیلون بیفایده بود کمی بعد تقیان بیشتر آب و پهنتر شدن رود چنان اون دو رو از هم دور کرد که همدیگر رو به زحمت میدیدند اونها شب و روز در کوهها در ها توی سرما و گرما همدیگر رو جستجو میکردند. خستگی و گرسنگی و دشواری های دیگر رو به جون میخریدند فقط به این امید که به همدیگه برسند سه سال گذشت بالاخره اونها به پردگاهی رسیدند که رودخونه به دریایی بزرگ میریخت. اونها بیش از هر زمان دیگری از هم دور و جدا شده بودند با ناامیدی سعی کردند که یک بار دیگه خودشون رو در امواج کفالوت بندازن. پریه چمنزار که همیشه اونها رو زیر نظر داشت و مواظبشون بود تا غرق نشن، شتابان چوب دستی خودش رو حرکت داد. یک دفعه بچه ها خودشون رو روی ماسه های زرین در کنار هم دیدند. خب دیگه خودتون میتونید شادی و شعفشون رو موقعی که دست در دست هم با شادی و خوشحالی حرف میزدند، تصور کنید اونها حرفوی زیادی برای گفتن داشتند و نمیدونستند از کجا شروع کنند، اما به سر موضوعی به توافق رسیدند. خودشون رو به خاطر قفلتی که باعث اون همه دردسر شده بود به سختی سرزنش کردند پری با شنیدن حرفاشون بلا فاصله ظاهر شد اونها به پاش افتادن و تقاضای بخشش کردند پری با روی باز اونها رو بخشید و قول داد حالا که تنبیه شدن همیشه با آنها دوست بمونه بعد دنبال کالسکهٔ هسری سبزش فرستاد که با شبنمهای بهاری آراسته شده بود پری قطرههای شبنم بهاری رو با دقت بسیار جمع کرده بود و براش ارزش خاصی داشتند اون به شیشدا موش کور دمکوتا دستور داد تا اون دو نفر رو با کالسکه به چمنزار برگردونه موشا هم در کمترین زمان کالسکرو رو به چمنزار رسوندند. سیلون و جوکاسا بعد از اون همه سرگردانی‌های سخت و زجرآور نزدیک بود با دیدن خونه دوست داشتنیشون از شادی پر در بیارن. که مسمم بود اسباب خوشبختی اونها رو فراهم کنه در غیابشون با پدر و مادر اون دو نفر که همیشه با هم دعوا داشتن صحبت کرد و اونها رو قانه کرد که با ازدواج اون دو دلدادی واقعی موافقت کنند. پری اونها رو به کلبهی برد که کسی نمیتونست زیباییش رو تصور کنه کلبه نزدیک چشمه بود که دوباره به حال اول خودش برگشته و جویباری از اون خارج میشد که باغ گلزار و چمنزار متعلق به کلبر و سیراب میکرد. چیزی بیشتر از این نمیتونست سیلون و از رو خوشحال کنه. همه چیز برای اونها و گلشون محیا بود. پری هم برای خوشایند اونها از هیچ کاری فروگذار نکرد. اونها به همه جا سر کشیدن و همه چیز رو تحسین کردند. وقتی در محتابی پوشید از گل سرخ نشستند، پری بهشون گفت قبل از برگزاری جشن عروسی و سررسیدن مهمانا میخواد برای گذران وقت داستانی تعریف کنه و پری شروع کرد. یکی بود، یکی نبود. روزگاری یک پری زندگی میکرد که به دلایلی بدکردار شده بود. اون در دادگاه عالی سرزمین پریان گناهکار شناخته و محکوم شده بود که چند سالی به شکل موجودی دیگه به زندگی ادامه بده. همینطور درست در لحظه که قرار بار دیگه ظاهر اول خودش رو به دست بیاره، باید برگ سرنوشت دو مرد تصمیم گیری کنه. اون میتونست ظاهر جدیدش رو خودش انتخاب کنه و چون به رنگ زرد خیلی علاقه داشت، به شکل پرنده زیبا با پرهای طلایی براق در اومد که هیچ کس تا اون زمان ندیده بود. پرنده زرد زیبا وقتی به پایان مدت مکافاتش نزدیک شد، به شهر بغداد پرواز کرد در اونجا کاری کرد تا در بهترین موقعیت درست زمانی که بدی و زمان در باغ قصر تابستانی با شکوهش گردش میکرد یک شکارچی پرنده اون رو شکار کنه همه بدی و زمان رو که اسمش به معنی شگفتی دورانه خوشبخترین فرد زیر آسمون میدونستن چون ثروت بیحدی داشت اما در حقیقت اون همیشه نگران ثروتش بود و از همه چیز خسته شده بود همیشه آرزو می میکرد چیزی تازه به دست بیاره و از این نظر لحظهای خودش رو خوشبخت نمیدونست حالا هم از قصرش که چنان بزرگ و باشکوه بود که پنجاه پادشاه میتونستند در اون زندگی کنن خسته شده بود چون چیز جدیدی وجود نداشت که باعث سرگرمیش بشه شکارچی پرنده با خودش فکر کرد این بهترین فرصته که پرندهی شگفت انگیز رو پیش بدیع الزمان ببره چون مطمئن بود اون با دیدنش بلافاصله دست به جیب میشه و پرنده رو با قیمتی مناسب میخره. البته که اشتباه هم نکرده بود همین که چشم بدی و زمان به پرنده افتاد اون رو در دستانش گرفت اون زیر بال راست پرنده کاغذی پیدا کرد که روش نوشته شده بود کسی که قلبم رو بخوره هر روز صبح در زیر بالش خودش صد سکه طلا پیدا میکنه با وجود اون همه ثروت آرزوی داشتن طلای بیشتر در بدی و زمان همچون آتش شعلهور شد و پرنده رو خرید اما اون مشکلی داشت نمیدونست پرنده رو به چه کسی بده تا براش بپزه در بین خدمتکاران بیشمارش به هیچ کس اعتماد نداشت بالاخره از شکارچی پرنده پرسید که آیا همسر داره چون پاسخ مثبت بود، پرنده رو بهش داد که به خونه ببره تا همسرش بپزه. اون گفت شاید خوراک این پرنده اشتهام رو باز کنه. روزهاست که میلی به غذا ندارم. اگر همسرت غذای خوشمزه درست کنه، صد سکه یه نقره بهش میدم. شکارچی با شادی زیاد به خونه دوید و موضوع رو به همسرش گفت. زن فورا دست بکار شد و با گوشت پرنده زرد، گوشت لذیذی درست کرد. اما وقتی بدی و زمان به کلبه اونها رفت و سراغ کله و قلب پرنده رو گرفت، چیزی پیدا نکرد. اون از دست زن پرندگیر بسیار عصبانی بود. زن بیچاره اونقدر ترسیده بود که در برابر بدی و زمان به زانو افتاد و گفت قبل از اومدنش، دو بچه‌ی اون به آشپزخونه اومدند و چون مزاحم پخت و پذش بودن اون کل و قلب رو که لغمه ناچیز میشد و چندان هم مقوی نبود به اونها داد و زمان فریاد میزد که از تمام افراد خانواده انتقام میگیره و با خشم زیاد از کلبه خارج شد. اونها واقعا از خشمش میترسیدن چون اون کسی نبود که کوتاه بیاد برای همین شکارچی و همسرش تصمیم گرفتند که بچه ها رو از خطر دور نگه دارن. زن شوهرش رو دلداری داد و اقرار کرد که آگاهانه سر و قلب پرنده رو به بچه ها داده چون نوشته زیر بال پرنده زرد رو خونده بود پدر و مادر که خیالشون از سرنوشت نیک دو فرزندشون راحت شده بود اونها رو در آغوش گرفتند و از اونها خواستند تا جایی که میتونن از بغداد دور بشن. و هر وقت تونستند اونها رو از حال و روز خودشون آگاه کنند پدر و مادر هم با هوشیاری و با تغییر قیافه در گوشه ای از شهر پنهان شدند. کمی بعد از این ماجرا، بدیع زمان به خاطر نگرانی و رنج و عذاب از دست دادن چنان گنجینه ای درگذشت. زن و شوهر به کلبه خودشون برگشتند و منتظر فرزندانشون موندند. پسر کوچکتر که قلب رو خورده بود، هر روز صبح که از خواب بیدار میشد، صد سکه طلای ناب در زیر بالش خودش پیدا می کرد. اما مثل همه فقرا بدون اون که دقت زیادی در نگهداریشون بکنه با بل پشت سر هم خودش رو انگشت نما کرد همه فهمیدن که اون مقدار زیادی طلا داره و توجهی به پسندازش نداره خیلی زود گروهی رازن بهش حمله کردن و اون در دفاع از خودش زخمی ناسور برداشت و به خاطر همون زخم درگذشت برادر بزرگتر که کله پرندگی زرد رو خورده بود به مسافرتی طولانی رفت و در طول سفر با هیچ حادثه ناگواری هم روبرو نشد. بالاخره به شهر بزرگی در آسیا رسید که در اونجا برای انتخاب امیر جدید آشوب برپا بود. بزرگان شهر به دو گروه تقسیم شده بودند. بعد از فریادها و گفتگوهای طولانی توافق کردند که هر وقت شخصی تازه وارد پا به شهر بگذاره که روی اونها تأثیر مثبت بذاره اون رو به امیری انتخاب کنند در این اوضاع و احوال بود که جوان مسافر پا به شهر گذاشت اون چهرهی دوست داشتنی و ظاهری اسوار داشت که همه دیدند یک کبوتر سفید مثل برف بالای سرش در پروازه همه به اون خیره شده بودند و به دنبالش را افتادند حالا دیگه اون به نزدیک قصر رسیده بود کبوتر همچنان روی سر جوان پرواز کرد. تمامی ساکنان شهر دورش جمع شده بودند و اون قبل از اون که چیزی بفهمه با کمال تعجب متوجه شد که به عنوان امیر انتخاب شده چون کاری رضایت بخشتر از دستور دادن نبود و اتفاق خاصی هم افتاد که مردم خیلی سری بهش عادت نکنند امیر جوان خیلی زود در مقام خودش احساس راحتی و آرامش کرد اما این باعث نشد که اشتباه نکنه حکومت اون اونقدر بد بود که بالاخره مردم شورش کردند و اون رو از تخت پایین کشیدند و زندگیش رو نابود کردند اون واقعا سزاوار این مجازات سخت بود چون روزگاری که در ناز و نعمت به سر می برد، پدر و مادرش را از یاد برده بود و اونها به خاطر فقر و بی‌نواهی درگذشتند پری در ادامه ی حرفاش گفت، سیلون و ژوکاس عزیزم. من این داستان را گفتم تا به شما ثابت کنم که این کل به یه کوچیک و هر آنچه که به شما تعلق داره، هدیه ای است که بیشتر از خیلی چیزها که الان به نظرتون با شکوه و لذت بخش میاد براتون خوشبختی و رضایت خاطر میاره. اگر صادقان قول بدید که، که هاتون رو شخم بزنید و به گلتون غذا بدید و مثل قبل زیر قولتون نزنید در تالهتون اینطور میبینم که چیزی کم نخواهید داشت و اون رو واقعا براتون خوبه به دست میارید سیلون و جوکاسا صادقان قول دادن و سر قولشون موندند و همیشه از زندگیشون لذت بردند و با آرامش و سعادتمندی به زندگی ادامه دادند پری همه دوستان و همسایگانش رو به عروسی که مدتی بعد با شکوه و سرور بسیار برپا شد دعوت کرد. اون دو سالهای سال عمر کردند و تا زمانی که زنده بودند همدیگر را از ته دل دوست داشتند. خوشاقبت باشید دوستان. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی